بخش پنجم می تصور کرد که سلول زندان تاریک و بسته بوده و صدای ریش خند ها از خیابان به گوش می رسیده هایی که منتظر مرگ اندیشمند ساتیر شکل بودند اگر این حکم مرگ با مسافرت سالانه آتنی ها به دلوس که طی آن بنا به سنت قتل حرام بود همزمان نشده بود سقرات در دم کشته می شد سرشت پاک سقرات همدلی زندانبانان را جلب کرد و به او اجازه دادند با بازدید کنندگان ملاقات کند و به این ترتیب از درد و رنج آخرین روزهای زندگی کاستند. گروهی به ملاقات او آمدند. فایدون، کریتون، پسر کریتون یعنی کریتوبولوس، آپالودوروس هرموگنس، اپیگنس، آیسخینس، انتیستنس، کتسیپوس، سیمیاس، کبس، فایدونوس، اوکلیدوس و ترپسیان آنها نمی ناراحتی خود را از مشاهده این وضعیت پنهان کنند اکنون مردی که همواره فقط مهربانی و کنجکاوی زیادی نسبت به دیگران داشت مانند جنایتکاری منتظر مرگ بود گرچه بوم نقاشی داوید سقراط را در حالی نشان می‌دهد که دوستان اندوهگینش او را در بر گرفتند ولی باید به یاد داشته باشیم که دلبستگی و عشق آنها را دریایی از سوء تفاهم و نفرت دیگر آتنیها ها فرا گرفته بود. اثر دیده رو احتمالاً معدودی از بیشمار نقاشان بعدی مرگ سقراط را واداشته تا برای نمایش انواع حالتها در سلول زندان و نشان دادن تنوع حالت دیگر آتنیها را در هنگام مرگ سقراط به تصویر کشند. که احتمالاً نقاشی با این قبیل عناوین را به وجود آورده. پنج عضوه منصفه پس از گذراندن یک روز در دادگاه ورق بازی می کنند. یا اتحام زنندگان شام را به پایان می‌برند و مشتاقانه منتظر خواب هستند. نقاشی که به حالتهای رقعتنگیز علاقه داشته احتمالاً می برای این صحنه عنوان مرگ سقرات را برگزیده باشد. وقتی روز معود فرارسید، سقرات در خلوت خود تنها بود. همسر و فرزندش را برای ملاقات با او آوردند ولی گریه های کسان تیپه چنان عصبی بود که سقراط درخواست کرد او را بیرون ببرند دوستانش تر بودند ولی همچنان به شدت اشک میریختند. حتی زندانبان که مرگ عده زیادی را به چشم دیده بود برانگیخته شد تا ودایی دردناک را بجاورد در این مدت تو را نیک شناختم و میدانم که دلیرتر و شریفتر و مهربانتر از همه کسانی هستی که تا کنون به اینجا آمدند. میدانی که چه فرمانی آوردم. پس در امان خدا باش و بکوش تا چیزی را که راه گریز از آن نیست به بردباری تحمل کنی. اشکش سرازیر شد و روی برگردان و بیرون رفت. سپس معمور اعدام آمد. در حالی که جامی از شوکران در دست داشت سقرات گفت دوست گرامی اکنون چه باید بکنم؟ گفت پس از آنکه نوشیدی باید کمی راه بروی تا پاهایت سنگین شوند آنگاه بخواب تا زهر اثر کند پس جام را به سقرات داد و سقرات در کمال متانت و بی آنکه دستش بلرزد یا رنگش برگردد جام را گرفت جام را به لب برد و بی آنکه خم به ابرو آورد زهر را نوشید بسیاری از ما تا آندم دم خود را نگاه داشته بودیم این جملات را فایده نقل می میکند ولی چون سقرات زهر را نوشید انان طاقت از دست ما به در رفت اشک من چنان سرازیر شد که ناچار شدم روی بپوشانم و بگذارم فرو ریخت کریتون چون نتوانست از گریه خودداری کند بیرون رفت آپلو از چندی پیش گریان بود ولی در این هنگام چنان شیونی آغاز کرد که ی ما اختیار از دست دادیم. در این میان تنها سقرات آرام بود. سقرات از همراهانش خواست آرام گیرند. به مسخره گفت چه می‌کنید؟ چه دوستان عجیبی هستید؟ سپس بلند شد و دور سلول راه رفت تا زهر اثر کند. وقتی پاهایش سنگین شدند به پشت خوابید و حس از پاها و ساقهایش رفت زهر به طرف بالا حرکت کرد و به سینهش رفت و به تدریج هوشیاریش را از دست داد نفسش آهسته شد کریتون وقتی دید که چشمان بهترین دوستش باز و بی حرکت هست آنها را بست فایدون این بود سرانجام دوست ما مردی که از همه مردمانی که دیدیم و آزمودیم هیچ کس در خردمندی و ادالت به پایش نمیرسید. خودداری از گریه دشوار است. شاید به این دلیل که گفتند سقراط سری پیازی شکل و چشمان درشت عجیبی داشته، صحنه مرگ او مرا به یاد بعد از ظهری انداخت که هنگام تماشای فیلم مرد فیل است. به نظر می رسید که هر دو مرد یکی از قمنگیز ترین سرنوشتها را داشتند. خوب بودن ولی با این همه بد شمرده شدن. ممکن است هرگز به خاطر بد جسمانی تمسخور نشده باشیم و برای کار و سمری حیات خود محکوم به مرگ نشده باشیم. ولی یک چیز جهان شمول در ماجرای مرد سوی تفاهم قرار گرفتن وجود دارد که این دو داستان مثالهای سوگناک تمام عیار آن هستند. زندگی اجتماعی سرشار است از اختلاف و تزاد میان برداشتهای دیگران از ما و واقعیت وجودی ما. وقتی محتاط هستیم به حماقت متهم میشویم. کم روی ما نشانه غرور و تمایل به جلب چاپلوسی شمرده می شود. میکوشیم تا سو را از میان برداریم ولی دهانمان خشک می شود و نمی جملات مورد نظر خود را بیان کنیم. دشمنان سرسخت به مقامهای منصوب می میشوند که ما را زیر آنها میسازد. در برابر دیگران سرزنشمان کنند. در نفرتی که نامنصفانه معطوف به فلسفی بیگناه شده تنین و پشوا که همان آزار و اذیتی را تشخیص میدهیم که کسانی که نسبت به رعایت ادالت در حق ناتوان یا بیمیل هستند بر ما روا میدارند. ولی در این داستان راستگاری نیز وجود دارد به زودی پس از مرگ سقراط اوزار رو تغییر نهد. به گزارش ایسوکراتس، تماشاگران نمایشنامه پالامدس اثر اوریپید وقتی نام سقراط برده شد به شدت اشک ریختند. دیودوروس گفت که متهم کنندگان سقرات سرانجام به دست مردم آتن به دار آویخته شدند. پلوتارک به ما می‌گوید که آتنی ها چنان نفرتی از متهم کنندگان سقراط پیدا کردند که از حمام کردن به آنها سر باز زدند. و از نظر اجتماعی هر دشان کردن تا سرانجام آنها در ناامیدی خود را به دار آویختند دیوگنس لایرتیوس میگوید که فقط اندک زمانی پس از مرگ سقرات شهر آتن ملتوس را به مرگ محکوم و آنوتوس و لیکن را تبعید کرد و مجسمه برنزی گرانبهای از سقراط برپا کرد که به دست لیسیپوس کبیر ساخته شده بود سقرات پیش بینی کرده بود که آتن سرانجام به واقعیت پی خواهد برد چنین شد باور کردن این رستگاری دشوار است ما فراموش میکنیم که از میان رفتن تعصبات و کاهش حسادتها به زمان نیاز دارد این داستان ما را ترغیب می‌کند تا عدم محبوبیت خود را نه با چشمان ریشخند آمیز اعضای هیئت منصفههای محلی بلکه به طریقی دیگر تفسیر کنیم سقراط را پانصد مرد ابله محاکمه کردند که شکها و بدگمانیهای غیر در دل داشتند زیرا آتن در جنگ پلوپونزی شکست خورده بود و این متهم مشکوک و عجیب به نظر می رسید با وجود این سقراط عقیده به داوری دادگاه های را از دست نداد هرچند در هر زمانی فقط در یک مکان ساکن هستیم ولی به کمک این مثال می توانیم خلاقیت به خرج دهیم و خود را در سرزمین ها و ادوار و اعثار دیگری تصور کنیم که نوید می دهند با عینیت و بیطرفی بیشتری درباره ما داوری خواهد شد. شاید نتوانیم به موقع اعضای هیئت منصفه محلی را برای کمک به خود قانع سازیم، ولی میتوانیم با چشمانداز نوید بخش حکم آیندگان تسلی یابیم. با این حال، این خطر وجود دارد که مرگ سقراط بنا به دلایلی نادرست ما را فریب دهد. شاید این امر این اعتقاد احساسی را در ما تقویت کند که رابطهی قطعی میانه مورد نفرت اکثر افراد بودن و برحق بودن وجود دارد. شاید به نظر برسد که این سرنوشت نوابق و قدیسان است که در معرض سو تفاهم اولیه قرار گیرند و سپس مجسمه های برونزی لیسیپوس نصیبان آنها شود. ممکن است ما نه نابقه باشیم و نه قدیس. شاید صرفا در برابر دلایل خوب، نقش مخالف را بازی کنیم و کودکان اطمینان داریم که هیچگاه به اندازه وقتی که دیگران ما را در اشتباه می‌پندارند بر حق نیستیم. نیت سقراط این نبود. اعتقاد به این که عدم محبوبیت مترادف حقیقت است، به همان اندازه خام و ناشیان است که عقیده داشته باشیم عدم محبوبیت مترادف با بطلان و خطا است. اعتبار یک عقیده یا عمل نه با شمار افراد موافق یا مخالف با آن بلکه با پیروی آن از قواعد منطق تعیین شود. محکوم شدن یک استدلال از جانب اکثر افراد دلیل نادرستی یا برای شیفتگان مبارزه طلبی و اعتراض معابانه دلیل درستی آن نیست سقرات به ما راه خروج از دو توهم نیرومند را نشان داد اینکه یا باید همیشه به دستورهای افکار عمومی گوش کنیم یا هیچ وقت به آنها گوش نکنیم پیروی از سرمشق او هنگامی بیشترین سود را در بر دارد که در عوض بکوشیم همواره به دستورهای عقل گوش بسپاریم